با سلام خدمت تمام دوستان عزیز و کتاب دوستم. کتابی رو که براتون روخونی می کنم اسمش هست روح کوچک و خوشید اثر نیر دونال باش. امیدوارم که با شنیدن این کتاب و درک مطلب اون زخمای شما هم التیام پیدا کنه. روزی در هیچ روزگاری روح کوچکی بود که به روح بزرگ گفت؟ من میدانم چه کسی هستم؟ روح بزرگ هم گفت: چه عالی؟ تو چه کسی هستی؟ روح کوچک فریاد زد؟ من من نور هستم. روح بزرگ به او لبخندی زد و گفت؟ درست است. تو نور هستی. روح کوچک خیلی خوشحال بود چون چیزی را فهمیده بود که همه ارواح در ملکوت می بایست می روح کوچک گفت: وای این خیلی خوب است. ولی خیلی زود دیگر دانستن این که چه کسی است برایش کافی نبود. حالا روح کوچک در درونش احساس جوش و خروش میکرد و میخواست آن چیزی بشود که هست به همین دلیل دوباره پیش روح بزرگ رفت که البته برای تمام ارواحی که میخواهند آنچه واقعا هستند بشوند فکر بکریست روح کوچک گفت سلام حالا که میدانم کی هستم آیا می توانم همان بشوم؟ روح بزرگ گفت: منظورت این است که می میخواهی چیزی بشوی که از قبل هستی؟ روح کوچک پاسخ داد: راستش اینکه بدانم چه کسی هستم یک چیز است و اینکه بخواهم آن چیز بشوم یک چیز دیگر. می خواهم احساس کنم. مثل نور بودن چه است؟ روح بزرگ در حالی که به او لبخند میزد دوباره گفت: ولی تو از قبل نور هستی؟ روح کوچک فریاد زد: بله، ولی میخوا ببینم چه احساسی دارد؟ روح بزرگ در حالی که می خندید گفت؟ اینطور که پیداست کوتاه نمی آیی. تو همیشه ماجراجو بوده ای. سپس لحنش عوض شد. فقط یک چیزی هست. روح کوچک پرسید چه چیزی؟ روح بزرگ گفت از تو چه پنهان؟ هیچ چیز غیر از نور وجود ندارد. میبینی بنابراین آسان نیست که بفهمی چه کسی هستی چون هیچ چیزی نیست که تو آن نباشی روح کوچک که کمی گیچ شده بود گفت ها؟ روح بزرگ گفت اینجوری مجسم کن تو مثل یک شم در درون خورشید هستی آو؟ تا همان با هزاران هزار شمعه دیگر که خورشید را تشکیل می‌دهند و خورشید بدون تو خورشید نخواهد بود نه خورشید خواهد بود که یک شمعش کم است و اینطوری دیگر به هیچ وجه خورشید نخواهد بود چون دیگر درخشش آن اینگونه نخواهد بود چگونه باید خودت را به عنوان نور بشناسی در حالی که در میان نور هستی؟ مسئله این است. روح کوچک در حالی که بادی به قبقب انداخته بود گفت: خب تو قادری یه فکری برایش بکن. روح بزرگ دوباره به او لبخند زد و گفت: قبلا فکرش را کرده. چون وقتی درون نور هستی، نمی توانی خودت را به عنوان نور ببینی. پس ما تو را در تاریکی احاطه می کنیم. روح کوچک پرسید، تاریکی چیست؟ روح بزرگ پاسخ داد، آن چیزی است که تو نیستی. روح کوچک فریاد زد، آیا من از تاریکی خواهم ترسید؟ روح بزرگ پاسخ داد فقط اگر خودت انتخاب کنی که بترسی واقعا هیچ چیز ترسناکی وجود ندارد مگر اینکه خودت تصمیم بگیری آن چیز ترسناک باشد می‌بینی همه چیز را ساختگی می‌کنی تظاهر می‌کنی روح کوچک گفت آو عجب حالا احساس بهتری داشت سپس روح بزرگ برایش توضیح داد توضیح داد که در تجربه هر چیزی درست متضاد آن پدیدار می شود. روح بزرگ گفت این نعمت است چون بدون آن نمی توانی تشخیص بدهی هر چیز شبیه چیست نمی توانی گرما را بدون سرما بشناسی بالا را بدون پایین و تند را بدون آهسته چپ را بدون راست نخواهی شناخت. اینجا را بدون آنجا اکنون را بدون آنگاه سپس افزود بنابراین وقتی با تاریکی احاطه میشید، مشتت را گره نکن صدایت را بالا نبر و تاریکی را دشنام نده بلکه نوری باش در دل تاریکی من نراحت این هم نباشت آنگاه خواهی دانست راستی چه کسی هستی و دیگران هم دانست بگذار نور تو چنان بدرخشد. که همه بدانند تو چقدر خاص هستی روح کوچک پرسید منظورت این است که اشکالی ندارد بگذارم دیگران ببینند من چقدر خاص هستم روح بزرگ خندید و گفت البته خیلی هم خوب است ولی به خاطر داشته باش خاص به معنای بهتر نیست هر کسی خاص است، هر کسی به شیوه خودش، با وجود این، خیلی ها این را فراموش کردند. آنها فقط زمان در میابند، اشکالی ندارد، خاص باشند که تو دریابی اشکالی ندارد، خاص باشی. روح کوچک در حالی که پای میکوبید و و خیز میکرد و میخندید و سرخوشانه بالا و پایین میپرید گفت وای من میتوانم به همان اندازه که میخواهم خاص باشم. روح بزرگ هم در حالی که روح کوچک میخندید گفت بله و میتوانی از همین حالا شروع چه چجور خاصی میخواهی باشی. روح کوچک تکرار کرد چجور خاصی؟ سر در نمیآورم. روح بزرگ توضیح داد راستش نور بودن یعنی خاص بودن. و خاص بودن انواع بسیار دارد. مهربان بودن خاص است. نجیب بودن خاص است. خلاق بودن خاص است. شکیبا بودن خاص است. آیا می توانی انواع دیگری از خاص بودن را ذکر کنی؟ روح کوچک لحظه آرام نشست و گفت: میتوانم انواع بسیاری از خاص بودن را ذکر کنم. یاور بودن خاص است، یاری رساندن خاص است، صمیمی بودن خاص است، اینکه یک نفر ملاحظه دیگران را هم بکند خاص است. روح بزرگ گفت: بله و تو می توانی همه اینها باشی یا هر نوع خاصی که می در هر لحظه بشوی این همان است که معنی نور می دهد. روح کوچک با هیجان زیاد فریاد زد من می دانم می چه بشوم من می دانم می چه بشوم میخواهم آن نوع خاصی بشوم که به آن میگویند بخشاینده آیا بخشاینده بودن خاص نیست؟ روح بزرگ در حالی که به روح کوچک اطمینان میداد گفت: « اوه بله این خیلی خاص است. خیلی خاص است. روح کوچک گفت: بسیار خوب این همان چیزی است که من می خواهم باشم. میخواهم بخشاینده باشم. می خودم را در این جایگاه محک بزنم. روح بزرگ گفت خوب است ولی نکته هست که باید بدانی. روح کوچک دیگر طاقتش قطعش طاق شده بود. به نظر می همیشه قطع پیچیدگی وجود دارد. روح کوچک در حالی که آه می کشید پرسید چه نکته ای؟ روح بزرگ پاسخ داد. در ملکوت هیچ کس برای اف کردن وجود ندارد. روح کوچک با تعجب از آنچه شنیده بود، هیچ کس؟ روح بزرگ پاسخ داد: هیچ کس. به اطرافت نگاه کن. فقط آن زمان بود که روح کوچک متوجه شد، جمع کثیری آنجا گرد آمدند. ارواح از دور و نزدیک آمده بودند، از سراسر ملکوت، چون قبل از آنکه روح کوچک این مکالمه فوقلاده را آغاز کند، کلمه بر زبان جاری شده بود، و اینک همه میخواستند بشنوند آنها چه میگویند. روح کوچک در حالی که به ارواح پرشمالی که آنجا گرد آمده بودند نگاه میکرد، چاره‌ای نداشت جز این که موافقت کند هیچ کدام, هیچ کدام آنها در خارق العاده بودن شکوه و کمال کمتر از روح کوچک نبودند روح کوچک به قدری از آن همه روح که آنجا جمع شده بودند و از آن روشنایی نورشان شگفت زده شده بود که به سختی میتوانست به آنها نگاه کند. روح بزرگ پرسید. خب، حالا چه کسی هست که او را به روح کوچک در حالی که زیر لب گرولون می کرد گفت. حیف شد. میخواستم خودم را در جایگاه کسی که اف می کند محک بزنم. میخواستم بدانم، آن نخاست بودن چه احساسی دارد اینطور شد که روح کوچک آموخت غمگین بودن چه احساسی دارد ولی در همین موقع یک روح صمیمی از میان جمعیت قدم پیش گذاشت و گفت نگران نباش روح کوچک من به تو کمک کنم. روح کوچک با خوشحالی پرسید این کارو میکنی؟ ولی چه کاری از دستت برمیآید ؟ خیلی کارها میتوانم به تو کسی را بدهم که تو او را ببخشایی. میتوانی؟ روح سمیمی گفت. حتما میتوانم در زندگی مادی تو وارد شوم و کاری انجام دهم تا بعد تو مرا ببخشید. روح گوچک پرسید، ولی چرا؟ چرا این کار را می کنی؟ تو، تویی که موجودی دارای کمال مطلق هستی؟ تو، تویی که با چنان سرعتی به ارتعاش در می آیی؟ که نوری انسان درخشان ایجاد می کند؟ که من به سختی می توانم به تو نگاه کنم. چه چیز باعث می شود بخواهی آنقدر از سرعت ارتعاشت پایین بیایی که آن نور تابناک تو تیره و متراکم شود؟ چه چیز باعث می شود تو تویی که چنان نورانی هستی که بر فراز ستارگان دست افشانی می کنی و با سرعت فکرت در ملکوت سر می کنی؟ به زندگی من وارد شوی و خودت را آنچنان سنگین کنی که بتوانی کار سشتی انجام بدهی روح سمیمی پاسخ داد ساده است این کار را می کنم چون تو را دوست دارم روح کوچک از پاسخ او شگفت زده شد روح سمیمی ادامه داد تعجب نکن تو هم قبلا چنین کاری برای من انجام داده ای یادت نیست او ما هر دو با هم دستفشانی کرده ایم من و تو بارها و بارها در طی گذر قرنها و در طی سالیان متمادی و زمان زمانها هر دوی ما همه آن بوده ایم ما بالا و پایین آن بوده ای و راست و چپ آن ما اینجا و آنجای آن و اکنون و آنگاه آن روح صمیمی کمی بیشتر توضیح داد بنابراین من وارد زندگی مادی تو و آن آدم بد خواهم شد و در حق تو کاری می کنم که به راستی وحشتناک باشد. آنگاه تو می توانی خودت را در جایگاه کسی که عف می کند محک بزنیم. ببخشید. روح کوچک در حالی که کمی نگران بود پرسید. ولی چه کار خواهی کرد که اینقدر وحشتناک است؟ روح سمیمی چشمکی زد و پاسخ داد اوه، بالاخره فکری میکنیم و کاری را انتخاب میکنیم سپس روح سمیمی در حالی که به نظر میرسید کمی جدی شده است با صدای آهسته گفت میدانی؟ در مورد یک چیز حق با توست؟ روح کوچک کنجکاوانه پرسید، آن چیست؟ روح سمیلی گفت، من ارتعاشم را خیلی پایین می آورم و باید به چیزی تظاهر کنم که زمین تا آسمان با خودم متفاوت است. بنابراین می توانم در عوض از تو خواهشی کنم؟ روح کوچک فریاد زد اوه هرچه که باشد هرچه که باشد و بعد شروع به پایکوبی و نقم سرایی کرد. من بخشاینده می شوم من بخشاینده می شوم. سپس روح کوچک دید که روح صمیمی هنوز ساکت مانده است. روح کوچک دوباره پرسید. آن چیست؟ چه کار می توانم برایت بکنم؟ تو مثل فرشته ای هستی که قبول کرده چنین کاری برایم انجام دهد. روح بزرگ وارد, وارد گفتگوی اندر شد و گفت: البته این روح سمیمی مثل فرشته است. همه مثل فرشته هستند. همیشه به خاطر داشته باش. خدا شما را میفرستد. نه هیچ چیز دیگر. بنابراین روح کوچک بیش از پیش اصرار داشت که برای روح صمیمی کاری کند و دوباره پرسید: چه کار می توانم برایت بکنم؟ روح صمیمی گفت در لحظه ای که به تو ضربه می زنم و به تو اهانت می کنم در لحظه ای که بدترین کاری را، در حقت قط میکنم که حتی نمیتوانی تصورش را بکنی؟ درست درست در همان لحظه؟ روح کوچک حرفش را قطع کرده و پرسید خب در همان لحظه چه؟ روح سمیمی باز هم آرام تر شد و گفت به یاد بیاور که من به راستی که هستم؟ روح کوچک فریاد زد او حتما به خاطر خواهم آورد، قول می دهم، همیشه تو را همین گونه که اینجا و اکنون می بینم، به خاطر خواهم سپرد. روح سمیمی گفت خوب است، چون تو میدانی که باید به سختی تظاهر کنم و باید خودم را فراموش کنم. اگر تو مرا آنچنان که به راستی هستم به خاطر نیاوری من نیز دیر زمانی قادر نخواهم بود به یاد بیاورم و اگر فراموش کنم که چه کسی هستم شاید تو نیز فراموش کنی چه کسی هستی آنگاه هر دوی ما خواهیم شد آنگاه به روح دیگری نیاز داریم تا بیاید و به خاطر ما بیاورد که ما که هستیم روح گوچک دوباره قول داد نه، نه ما فراموش نخواهیم کرد من تو را به خاطر خواهم آورد و از تو به سبب چنین هدیه سپاسگزار سپاسگذار خواهم بود از اینکه فرصت دادی خودم را آنگونه که هستم محک بزنم از تو سپاسگزار خواهم بود. این کتاب یکی از عالیترین کتابایی که با روحت صحبت میکنه. بیایم تصمیم بگیریم همینجا تو همین لحظه از تمام کسایی که به نحوی به همون صدمه رسوندن سپاسگزار باشیم. چون اونا به خاطر ما به خاطر اون تجربه خاصی که روح ما طالبش بوده خودشون رو انقدر پایین کشیدن. تا ما بتونیم اون صفت رو تجربه کنیم. ممنون از همراهیتون. امیدوارم که لذت برده باشید. این اولین تجربه روخانی من از کتاب بود. امیدوارم آخریش نباشه. ایام بکن.